عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ما در این کلاس به بررسی مهمترین کتاب دنیا کلام خدا کتاب مقدس می‌پردازیم. ما در بررسیمون به دومین کتاب از پنج کتاب سرود در عهد قدیم رسیدیم که سرودنامهی وحش شده از طرف خدا هست برای قوم خدا. به کتاب مورد علاقه من کتاب مزمور در کتاب مقدس رسیدیم و امروز نگاهی خواهیم کرد به چیزی که شاید مورد علاقه بسیاری از مردم هست به معلممون در درس امروز گوش میکنیم اگر یک سرودنامه رو باز کنید مشابهت های زیادی بین یک سرودنامه و کتاب مزامیر خواهیم دید در کتاب مزامیر در نوشته های اولیه به برخی تعالیم موسیقی نیز برمیخوریم مثلا در دستنوشته های قدیمی مزامیر چهار، پنج و شش، کلماتی مانند زوات اوتار و زوات نفقه رو میبینیم که اینها کلمات عبری هستند که به ما میگن این مزامیر باید همراه با سازهای بادی و زهی زوات اوتار و زوات نفقه خوانده بشن. در مزمور شش، کلمه شمنیت در دستنوشته ها به معنی یک گام پایین تر هست، این کلمات راهنمایی هایی برای خانندگانی بودند که در خواندن این سرودهای بزرگ همراهی می کردند کلمه صلاح که تقریبا در سرتاسر سر مزامیر به چشم می خوره به معنی ایستادن و تفکر کردن درباره اون هست یا سکوت کردن و با احترام به آنندیشیدن. اندیشیدن کلمه صلاح می تونه به معنی توقف و تکرار در موسیقی امروز ما باشه وقتی شما کتاب مزامیر رو می خونید، میفهمید که این تعالیم برای ها مانند نوتایی است که در مقابل خوانندگان و رهبران پرستش در کلیساهای شما وجود داره. بسیاری از کسانی که روزای یک یکشنبه در کلیسای شما سرود می‌خوانند، تعالیم موسیقی رو که برای رهبر پرستش بسیار مهم هستند، ندیده می‌گیرند. آنها سرودنامه نامشون را باز می‌کنند و یا از روی پرده کلمات رو اون رو می‌خوانند. کتاب <مزامی> مزامیر مثل یک سرودنامه برای شما هست. کلمات سرود رو با اندکی از نوت‌ها برای نوازندگان توضیح میده. وقتی که کتاب مزامیر رو می خونید و کلمات سرود رو در سرودنامتون می خونید، در واقع شعر زیبایی رو می خونید. در های شما مانند مزامیر، نویس و نویسنده سرود معمولاً یکی از سه کار رو انجام میده. گاهی با خدا در مورد خدا صحبت میکنه که این هم دو پرستش هست، گاهی مزبور نویس و یا سرودنویس نویس با خدا در مورد مردم حرف میزنه. صحبت با خدا در مورد مردم دعا هست و گاهی در کلمات سرود و مزمور میبینید که مزبور نویس و یا سرودنویس نویس اصلا با خدا صحبت نمیکنند. اونها با انسان در مورد خدا صحبت میکنند. صحبت کردن با انسان در مورد خدا موعظه هست. وقتی که مزامیر یا سرود رو میخونید همیشه این سوال رو بپرسید: مخاطب نویسنده کی هست؟ و در مورد کی صحبت میکنه گاهی سرودنویس یا مزمور نویس داره خدا رو ستایش میکنه چون که با خدا در مورد خدا صحبت میکنه و گاهی دعا میکنه چون که با خدا در مورد مردم حرف میزنه و گاهی با انسان در مورد خدا صحبت میکنه و معنیش اینه که داره موعظه میکنه سوال کردن و پاسخ دادن به اون سوالات به شما دیدگاهی میده که پیام کاربردی مزموری رو که میخونید درک کنید بعلاوه چیزی که گفتم در سرتاسر کتاب مزامیر شما موضوع مشخصی رو میبینید. موضوع عمومی و صریح چیزی هست که ما بهش مرد برکت یافته میگیم. این موضوع مایه خوشحالیه. شما این رو در مزامیر 1 23 سی و دو و و بسیاری از مزامیر دیگه میبینید. موضوع مرد برکت یافته که در سرتاسر کتاب مزامیر میبینید همیشه چون این چیزی به شما میگه برکت مرد برکت یافته تصادفی نیست. برکت مرد برکت یافته شانسی نیست. برکت مرد برکت یافته ضیافتی از عواقب کارهای او هست. رابرت لوئیس استیونسون گفته دیر یا زود هر کسی باید بر سر سفره ضیافت عواقبش بنشینه. چرا مرد مبارک برکت گرفته؟ برکت او تصادفی یا شانسی نبوده. برکات او عواقب تصمیماتش هستند. و تصمیمات او نتیجه اعتقادات او به این دلیل او مردی مبارک شده همه اینها در مرد برکت یافته مزامیر به چشم میخوره. موضوع دیگری که در مزامیر به چشم میخوره میتونیم به اونها مزامیر احساسی یا تجربی بگیم بسیاری از این مزامیر حکایت از حال و هوای احساسی دارند من نمیدونم حال و هوای احساسی شما وقتی کتاب مزامیر رو میخونید چطور هست. اما میتونم این رو تضمین کنم هر حال و هوای احساسی که داشته باشید می تونید در کتاب مزامیر جایی مانند اون پیدا کنید. اگر شما افسرده هستید مزامیر رو بخونید، اونجا که مضمور نویس افسرده هست. اگر آشفته هستید، اگر استرس زیادی دارید می تونید در مزامیر جایی رو پیدا کنید که مضمور نویس آشفته هست و استرس داره. شما میتونید به لحاظ احساسی با خودتون در مزامیر مواجه بشید. وقتی این مزامیر احساسی رو میخونید و درون به حال و هوای روحانی میرسید که مزمورنویس احساسی مشابه شما داره این سوال رو از خودتون بپرسید مزمورنویس با این شرایط احساسیش چه برخوردی کرده او با افسردگیش چیکار کرده با فشارها با ترسها و با هر احساس دیگه‌ای که ممکنه داشته چیکار کرده بذارید مزمورنویس سرمشق شما باشه شما هم میتونید همون کار رو بکنید تا از اون حال هوای روحانی که مورد علاقتون نیست خارج بشید. نمونه برخی از مزامیر احساسی و تجربی مزامیر 3، 4، 34، 51 و 55 هستند. موضوع مشخص دیگری که در کتاب مزامیر میبینیم موضوع پرستش هست. وقتی مزمور نویس با خدا در مورد خدا صحبت میکنه وقتی که به سرودنامتون نگاه میکنید شاید متوجه بشید که سرودهای زیادی نیست که با خدا در مورد خدا صحبت کنه. شاید متوجه بشید که اغلب سرودها سرودهایی که با خدا در مورد انسان صحبت میکنه. سرودهایی که مانند موعظه هستند که با انسان در مورد خدا صحبت میکنن نیز در ها به چشم میخورند اما به ندرت میبینید که سرودی با خدا در مورد خدا صحبت بکنه. البته این که گفتم مربوط به کتاب مزامیر نیست. در کتاب مزامیر ور های زیادی هست که با خدا در مورد خدا صحبت میکنه. اگه اگر مظامیر پرستشی رو به دقت بخونید متوجه میشید که مزمور نویس نه تنها پرستش میکنه، بلکه به من و شما نیز نشون میده که پرستش چیه و چطور باید پرستش کنیم؟ او به ما نشون میده که وقتی پرستش می چه اتفاقی میافته ؟ وقتی مظامیر پرستشی رو می به همه این چیزها توجه کنید. بعضی از مظامیر پرستشی عبارتنده از مزمور هشت، شست و سه، صد، صد و سه و صد و هفت وقتی شما مزامیر احساسی و پرستشی این مرد برکت یافته رو می همیشه دعاهای مزمورنویس رو خواهید دید. درست در وسط کاربردی ترین مزمور، مزمورنویس در مورد دشمنانش دعا می بی مهری بیمهریهای دشمنانش رو ذکر میکنه از خدا میخواد که دشمنان او رو به قتل برسونه. شاید احساس کنید که اینجا یه اشکالی وجود داره چون این اندیشه‌های آری از محبت به نظر نمیرسه که برازنده زنده‌ی مزامیر باشه. یادتون باشه که مزمور نویس هزار سال قبل از موعظه سر کوهین‌ها رو نوشته. قانون اون موقع این بود که همسایه خودت رو محبت کن، اما از دشمنانت نفرت داشته باش. خواهید دید که داوود بعد از اظهار اندیشه‌های های یه کاربردی میگه که آیا نباید از اون‌هایی که از من نفرت دارند، نفرت داشته باشم؟ من از اونها با نفرت تمام متنفرم و با شمشیرم اونها رو مانند قبار زمین تک تکه خواهم کرد. داوود از خدا میخواد که به او قوت بده دشمنانش رو نابود کنه. ما به برخی زمینه تاریخی برای درک این دعاها نیاز داریم که با این مزامیر کاربردی آمیخته شدن. موضوع دیگری که در مزامیر به چشم میخوره، میتونید بهش مزامیر مسیحایی بگی مزمور نویس به عنوان یک نبی نبوت کرده. بعضی از مزامیر مخصوصاً مزمور 16، 22، 8 و 2 و دو مسیح هستند. در روز پنتیکاس وقتی که پتروس خطابه بزرگ خودش رو معایزه کرد، گفت که داوود یک نبی بود. پتروس در روز پنتیکاس از مزمور 16 معایزه کرد که نه تنها ظهور عیسی رو نبوت کرده بود، بلکه در مورد قیام ایسای مسیح نیز نبوت کرده بود. بعضی از مزامیر به طور وضوح نشون میدن که داوود در مورد ظهور اولیه و ثانویه عیسی مسیح پیشگویی کرده. یادتونه وقتی کتاب‌های تاریخی رو بررسی می‌کردیم گفتیم زمینه‌های تاریخی، زمینه‌های تاریخی برای بسیاری از مزامیر رو در کتاب اول و دوم سموئیل و در کتاب تواریخ می‌تونید پیدا کنید. به این دلیل بود که بیش از نیمی از مزامیر توسط داوود نوشته شده و زندگی‌نامه داوود در اون کتاب‌های تاریخی قید شده، گاهی در ضمن مزامیری که داوود اونها رو نوشته یا در دست هایی که یکی از مزامیر رو معرفی می‌کنه گفته شده که وقتی داوود اون مزمور خاص رو می‌نوشته در کجا قرار داشته و یا چه چیزهایی در زندگیش جریان داشته. اگر به زندگی نامه داوود در این سه کتاب تاریخی نگاه کنیم، این به ما کمک می‌کنه که مزمور رو بهتر درک کنیم. چون اونها به ما اطلاعات بیشتری در مورد اینکه در موقع نوشتن اون مزمور چه چیزی در دل داوود میگذشته خواهند داد این اطلاعات اضافی به ما کمک خواهند کرد مزموری رو که می خونیم تفسیر کنیم و بپذیریم قبل از اینکه عهد قدیم به زبان یونانی ترجمه بشه حدود 200 سال قبل از عیسی کتاب مزامیر از پنج کتاب جداگانه تشکیل شده بود اون کتاب‌ها جداگانه عبارت بودند از مزامیر 1 تا چهل و یک، و مزامیر 42 تا 72 و مزامیر 73 تا 90 و مزامیر 91 تا 107 و مزامیر 108 تا 150 73 مزمور از مزامیر به داود نسبت داده شده 12 تا از اونها به آصاف و 11 مزمور به پسران قوره نسبت داده شده محققین معتقدند که هزقیال هم 10 مزمور نوشته موسا از را و سلیمان هم هر کدام یک مزمور نوشتند بسیاری از اونها نویسندگانشون مشخص نیست احتمالاً توسط لاویان نوشته شدند که در کار موسیقی خدمت میکردند. و یا شاید هم خود داوود اونها رو نوشته باشه 1189 باب در کتاب مقدس وجود داره و محبوبترین باب من با این شروع میشه خداوند شبان من است و من محتاج به چیزی نخواهم بود بهتون میگم که چرا مزبور 23 یا مزبور شبان باب مورد علاقه من در کتاب مقدس است و چه مفهومی برای من داره. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چمنزارهای سرسبز مرا می خواباند. در کنار آبهای آرام مرا رهبری میکند، جان تازهی به من میبخشد و به خاطر نام خود مرا به راه راست هدایت مینماید. حتی هنگام گذشتن از درده تاریک مرگ از چیزی نمیترسم، زیرا تو همراه من هستی. عصاب و چوب دستی تو مرا حمایت خواهد کرد سفره برای من در حضور دشمنانم میگسترانی و مرا چون مهمانی عزیز در این ضیافت میپذیری و جام مرا لبریز میگردانی اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و محبت خواهی نمود و تا زمانی که زنده هستم در خانه تو ساکن خواهم بود آشکارا مزمور 23 یک موعظه است اما داوود خطاب به کی موعظه میکنه و در مورد کی صحبت میکنه داود برای من و شما در مورد خدای خودش صحبت می کنه و از می گن که مزمور 23 صحبت های یک گوسفند هست. چون که تمام اینها از زبان گوسفند نوشته شده. گوسفند کوچکی رو تجسم کنید که از میان حسارهای مرتب بیرون نگاه می کنه. چیزی که این گوسفند کوچک به شما میگه اینه. بذارید به شبانم با شما حرف بزنم چون من شبانی دارم که برای من همه چیزه. من مرتع سبز دارم، آبهای ساکن دارم، کاسه همیشه پره، راههایی رو که در اونها قدم میزنم میشناسم و میدونم که راه‌های درستی هستند، میدونم که نیکویی و رحمت در تمام عمرم به دنبال من خواهد بود و وقتی زندگیم تموم بشه، تا آخر عمرم با شبانم ساکن خواهم شد. همه اینها به خاطر هویت شبان من حقیقت داره. مزمور 23 مزمور یک مرد برکت یافته هست. داوود یک مرد برکت یافته بود. داوود این مرد برکت یافته تمامی این چیزها رو به دست آورده. شما بیشتر از هر چیزی از زندگی چی میخواید؟ مرطهای سبز سمبل چیزهای مادی هستند و ما به اونها احتیاج داریم و میخوایم. داوود میگه من اونها رو دارم. من مرطهای سبز دارم و بسیاری از مردم مرطهای سبز رو به همراه زخم معده دارن. اما داوود میگه من های سبز رو با آبهای راحت دارم به علاوه های سبز سلامتی هم دارم من نمیدونم چند نفر واقعا در زندگی در راههایی که میخوان برن میدونن کجا میرن نویس در مزمور 23 میگه می من گامهایی رو که برمیدارم میدانم که میدانم که در راههای درستی هست مزمور نویس در مزمور 23 میگه من گامهایی رو که برمیدارم می دانم که در راه های درستی هست اونها راه های ادالت برای من هست من از این مطمئنم داوود به ما میگه گه که کاسهش پر شده که نمادی از شادی هست همه می خوان که شاد باشند یادم هیپی هایی رو دیدم که روی پیشانیشون نوشته بود شادی شادی هست من با اونها موافقم شادی زمانی هست که شما شاد هستید در مزمور 23 داوود به ما میگه گه که مرد برکتی یافته مردی شاد هست. او شاد هست چون همیشه اش لبریز هست. او میگه شادی من در تمامی ایام و عمرم و تا ابد خواهد بود. به این مرد برکت یافته نگاه کنید که مزمور 23 را از زبان یک گوسفند نوشته. کلید این شادی مرد برکت یافته چی هست؟ آیا میخواهید که تمامی برکات مرد برکت یافته را دریافت کنید و شاد باشید؟ کلید همه اون برکات و شادیها جمله آغازین اون مزمور هست خداوند شبان من است تا زمانی که مزمورنویس میتونه بگه خداوند شبان من است این را هم میتونه بگه من مرطهای سبز آبهای راحت کاسه لبریز راههای پارسایی رو دارم من همه اینها رو دارم چون خداوند شبان من است اون جمله بزرگ را حلی بزرگ رو برمغان میاره اون جمله بزرگ را حلی بزرگ رو برمغان میاره این جمله آغازین خداوند شبان من است دو چیز میگه این جمله به ما درباره خدا میگه و اینکه چطور خدا رو درک کنیم و همینطور به ما میگه که چطور میتونیم خودمون رو درک کنیم این جمله آغازین میگه خداوند شبان من است و همینطور میگه من یک گوسفندم من کسانی رو دیدم که به من میگفتند این وحشتناکترین چیزی که در مورد انسان شنیدند. کسانی رو دیدم که خیلی موفق بودن و می میگفتند من گوسفند نیستم و به یک شبان نیاز ندارم هرگز مشکلی نداشتم که نتونم حل کنم در چنین موقعیت من به اونها میگفتم میخواهید براتون دعا کنم بعد از اینکه برای شخصی دو سال دعا کردم بارها از این تعجب کردم یه روز به دفترش رفتم و شنیدم که او میگه برای اولین بار در زندگیم نمیدونم چیکار کنم مشکل بزرگی دارم که نمیتونم حل کنم سالها قبل وقتی که یک بحران اقتصادی داشتیم، یک تاجر ماشین به من گفت من نمایشگاهی پر از ماشینهای بزرگ دارم و نمیتونم اونها رو بفروشم واقعا نمیدونم چیکار کنم او هم کسی بود که بارها به من گفته بود که احتیاجی به شبان ندارم چون هیچ وقت مشکلی نداشته که نتونه خودش حل کنه یادمه که به او گفتم شاید زمان مناسبی برای این باشه که صدای گوسوند در بیاری این بهترین زمان هست که بگید به یک شبان نیاز دارید کسی که شما را در راه‌های درست هدایت کنه یک بار وقتی خیلی زود بیدار شده بودم و داشتم لباس میپوشیدم همسرم بیدار شد. او گفت کجا میری؟ و من گفتم کتابی خوندم که یک محقق پروتستان در اون گفته وقتی بیدار شدی بلند شو و وقتی بلند شدی کاری برای خدا و بررهای او بکن. و زنم شروع کرد به درآوردن صدای گوسفان. او به من یادآوری کرد که او و بچهها هم بررهای خدا بودند و به من یادآوری کرد که لازم از او و بچهها هم مراقبت کنم. من معتقدم مزمور 23 به ما میگه خداوند شبان من است و من گوسفند او هستم. مزمور 23 اقرار به دو چیز هست. داوود میگه خداوند شبان من است و من گوسفند او هستم و این کلید همه برکات منه. تا زمانی که بگم خدا شبان من هست، مرطها سبز هستند، آبها راحت هستند و کاسم لبریز خواهد بود. بعد داوود به ما میگه اون رابطه چطور با خدا برقرار شده؟ وقتی شما بفهمید که این رابطه گوسفند شبانی کلید همه برکات خدا هست، سوال بعدی شما میتونه این باشه. چطور میتونم این رابطه گوسفند شبانی رو با خدا برقرار کنم؟ در آیه دوی اون مزمور داود میگه او مرا در مرتح های سبز میخواباند. اگر شما چیزی در مورد پرورش گوسفند بدونید، میدونید که یک شبان چطور گوسفندش رو میخوابونه. شبان یک چوب دستی و اسا داره؟ چوب دستی چیزی مانند یک چماغه که شبان با اون گوسفندهاش رو از حیوانات درنده محافظت میکنه. شبان اصاش رو برای هدایت و تنبیه گوسفندانش هم به کار میبره. یک سر اصا مانند یک قلابه و سر دیگر اصا سنگین و گرده. شبان از قلاب برای نجات دادن گوسفندان سرگردان استفاده میکنه. وقتی که شبان میخواد قدرتش رو بر یک گوسفند اعمال کنه با سر گرد عصا به پشت سر گوسفند بین شاخها میزنه و میگه بخواب. من داستانی از یک دانشجوی تازه وارد در آکادمی پلیس خوندم که در نبرد تن در کلاس اول شد. وقتی که دوره ورزش‌های رزمی تموم شد، او نفر اول کلاس بود. بعد از اون نزد مربی رفت و گفت میخوام در این رشته پیشرفت کنم. چطور میتونم پیشرفت کنم؟ مربی گفت تو به تجربه نیاز داری و اون تازه وارد گفت چطور میتونم تجربه کسب کنم؟ مربی گفت به دهکده های اطراف برو و با کشاورزان پیر مبارزه کن اون دانشجو به دهکده های اطراف رفت و نزد کشاورزی که از انبار بیرون می اومد توقف کرد او نزد کشاورز رفت و کشاورز گفت سلام و دانشجو هم گفت سلام بعد او با یک حرکت کارته ضربه زیر گردن کشاورز زد ضربه کشاورز رو نقش زمین کرد پیرمرد سرش رو تکون داد و گفت این چی بود دانشجو گفت این یک حرکت کاراته از ژاپن بود. پیرمرد گفت بسیار خوب فهمیدم. بلند شد و به طرف انبار رفت. و دانشجو ضربه دیگری از پشت به گردن او زد که این ضربه باعث شد کشاورز با صورت روی کاها بیفته. سی ثانیه بعد به خودش اومد و گفت این چی بود؟ گفت این یک حرکت تکفاندو از کره بود. کشاورز گفت بسیار خوب این هم یادت باشه. بعد بدون این که چشم از دانشجو برداره به انبار رفت و وقتی که از انبار بیرون میومد چیزی رو پشتش مخفی کرده بود و با یک حرکت ناگهانی ضربه به سر دانشجو زد. سی دقیقه بعد دانشجو به خودش اومد و دید کشاورز با پوزخندی بالای سرش استاده. دانشجو گفت این چی بود؟ کشاورز گفت این هم یک دیلم از انبار تدارکات مزرعه من بود. مزمور 23 آیه دو چیزی مثل دیلم خداوند رو از انبار تدارکات مزرعه توضیح میده. وقتی خداوند شبان ما میشه، او باید ما رو بخوابونه. خدا معمولاً این کار رو با دادن مشکلات لاینحلی به ما انجام میده. مشکلاتی که ما نمیتونیم حل کنیم، همون چماق خداوند هست که بین شاخهای ما میزنه درست روی سرمون. خداوند برای جلب توجه ما، مشکلاتی به زندگی ما وارد میکنه که نمیتونیم اونها را حل کنیم. براوه گفته مزمور 23 خداوند جان ما را با هدایت کردن ما در راه های پارسایی به خاطر نام خودش تازه میکنه وقتی که بدونیم شبان کیه و ما گوسفندان او هستیم وقتی ما را می خوابونه و مرتا سبز هستند و آبها آرام بخش و کاسمون لبریزه دوباره بلند میشیم در جاهایی که ما می لغزیم و می افتیم، باید جان ما تازه بشه وقتی خداوند جان ما را تازه میکنه چطور این کارو میکنه بنابه گفته داوود خدا جان ما رو به روشی کاملا عملی تازه میکنه. شبان اعظم با هدایت کردن ما به راه‌های درست جان ما رو تازه میکنه. او همه این کارها رو به خاطر نام خودش میکنه. پیغام مزمور 23 رو در زندگی خودتون به کار بگیرید. آیا یک نقطه عطف روحانی دارید؟ آیا زمانی در زندگیتون دارید که برای اولین بار گفتید خداوند شبان من است؟ آیا زمانی توی زندگیتون بوده که بتونید بگید وقتی خداوند منو خوابونده یادم میاد که کی بوده شاید یادتون بیاد که در زمان گذشته وقتی خدا شبان شما شد مرتها سبز بودند و آبها آرام بودند و کاسه لبریز بود اگرچه چه ممکنه اون های سبز پژمرده بشن آبهای راحت متلاطم بشن و کاسه از شادی خالی بشه چه اتفاقی برای های سبز آبهای آرام کاسه های لبریز افتاده شما چون دوباره بلند شدید و کنترل زندگی خودتون رو به دست گرفتید و شبان زندگی خودتون شدید شما چون دوباره بلند شدید و کنترل زندگی خودتون رو به دست گرفتید و شبان زندگی خودتون شدید اون برکات رو از دست دادید چیزی که شما نیاز دارید تجدید رابطه گوسفند شبانیه مطمئن باشید که شما به تازه شدن جانتون نیاز دارید خدا چطور جان شما رو تازه میکنه؟ خدا جان شما رو با هدایت در مسیرهای پارسایی به خاطر نام خودش تازه میکنه. خدا ما رو نزد آبهای راحت و به راه‌های پارسایی هدایت میکنه. وقتی داوود به ما میگه که خدا ما رو به راه‌های پارسایی هدایت میکنه، کلمه یونانی رو برای هدایت استفاده میکنه که به معنی راندن هست شاید گاهی دوسه سال طول بکشه که ما در راه های پارسایی جانمون تازه بشه. اما خدا ما رو به راه های پارسایی هدایت می‌کنه تا جان ما بتونه تازه بشه. اینها بعضی از کاربردهای های عملی مزمور 23 برای زندگی من و شما هستن. مزمور 23 به ما فلسفه ی کفایت زندگی رو میده. ده. مزمور شبانی میگه کلید زندگی اینه که خداوند شبان منه و منو می خوابونه. این خوابوندن کلید زندگی هست. اگر میخواهید های سبز، آبهای آرام و کاسه های لبریز داشته باشید، پس یاد بگیرید که بگید خداوند شبان من است و مرا می‌خواباند. شما نه تنها باید این رو بگید، بلکه باید این رو زندگی کنید. مزمور شبان فلسفه مرگ را هم به ما میده. می میدونند که چطور زندگی کنند، اما نمیدونند که چطور باید بمیرند. این مزمور به ما فلسفه زندگی و مرگ مسیحی رو میده. در مزمور 23 مرگ به این صورت به تصویر کشیده شده. شبان یک بار دیگه برای آخرین بار به زندگی ما میاد. و چون هیچ کدوم از ما تصمیم نمیگیریم که بمیریم او باید ما رو در مرگ بخوابونه تا بتونه به ما برکاتی رو که در بعد ابدی منتظر ما هست بده. کتاب مقدس مرتباً به ما این واقعیت رو میگه که ابدیت مهمترین بخش از زندگی ماست. فرض کنید که شما خدا بودید و متههای سبزی رو میشناختید که هرگز پژمرده نمیشند و آبهای آرامی که هرگز متلاطم نمیشند کاسه های لبریزی که هرگز خالی نمیشند و میدونستید که همه این چیزها در بعد دیگری هستند و میخواستید اینها را به کسی بدید. چطور این کارو می چون اونها تصمیم نمیگرفتند که بمیرن شما مجبور میشدید که اونها رو در مرگ بخوابونید. بعد به عنوان خدا به اونها واقعیت‌های ابدی رو میدادید که تا ابد ادامه خواهد داشت بسیاری بر این باورند که مزمور 23 فلسفه مناسبی از مرگ رو به ما میده او منو در مرگ میخوابونه چونکه چون که می این برکات ابدی رو به من بده مزمور 23 همینطور همینطور برای شکست ها راهکاری داره بسیاری از مردم میدونن چطور زندگی کنن و بعضی ها حتی میدونن چطور بمیرن اما تعداد خیلی کمی هستند که میدونن چطور از اوطه شکست ها بر بیان؟ بسیاری از مردم با ترس از شکست زندگی می کنن. بسیاری از اونها وقتی با شکست روبرو میشن مطلقا نمیتونن از اوطه شکست بر بیان و خیلی ها به خاطر شکست خودشون رو میکشند من معتقدم که من معتقدم که این مزمور به ما نشون میده که چطور با شکست ها مواجه بشیم وقتی که به ما میگه تنها زمانی که ما نزد شبان میاییم و میگیم به تازگی نیاز داریم زمانی که شکست می‌خوریم شبان اعظم اون موقع قسمت قلاب و رو به کار می‌گیره و ما رو از شکستهامون نجات می‌ده شبان نیکو شکست های ما رو با راندن ما به راه‌های پارسایی جبران می‌کنه و شاید رفتن در این راه ها سال‌ها طول بکشه تا ما رو از شکستمون نجات بده مهمترین جمله در این مزمور جمله آغازین هست خداوند شبان من است فقط زمانی که شبان ما رو خوابوند میتونه ما رو هدایت کنه. وقتی او شروع به هدایت ما میکنه، ما میتونیم بگیم از چیزی نمیترسیم، ما از هیچ شریری نمیترسیم چون میدونیم که شبان با ماست. ما میدونیم که چوب دستی او قابلیت حفاظت از ما رو داره و عصای او که به معنی قابلیت هدایت ما هست میتونه برای ما آرامش بزرگی بیاره. وقتی با مشکلات و امتحانات میشیم ما میدونیم که او برای ما سفره ای مهیا کرده معنی شینه که اون میتونه هر چیزی رو برای ما مهیا کنه داستانی در مورد یک خانواده متحد شنیدم که در سوئیس شبان بودند اونها به پسر کوچکشون مزمور 23 رو یاد داده بودند و هر شب قبل از اینکه به رخت خواب بره مادرش او رو وادار میکرد که بگه خداوند شبان منه و وقتی که او این جمله رو می میگفت مادرش به او یاد داده بود که او این کلمات رو با انگشتانش بشماره وقتی که به کلمه شبان من میرسید به او یاد داده بود که به انگشت نشانه اشاره کنه یک روز وقتی که پسرشون به همراه والدین از گوسفندان مراقبت میکردند با کولاک سختی مواجه شدند پسر بچه از خانواده دور افتاد و دو روز بعد او رو یخ زده در بین برف پیدا کردند دست چپش انگشت اشاره دست راستش رو محکم گرفته بود این والده می دونستند که پسر کوچکشون رفته تا شبان حقیقی رو ببینه و بهش بگه خداوند شبان من است. آیا شخصاً مزمور شبان رو در زندگی خودتون می پذیرید؟ آیا این مزمور به اندازه این پسر برای شما جا افتاده؟ آیا می تونید بگید خداوند شبان من است؟ او می که شبان شما بشه. اما او شما را مجبور نمی کنه که تصمیم بگیرید. مانند مزمور نویس شما هم میتونید امروز و هر روز بگید خداوند شبان من است دوستان حالا شما میتونید بفهمید که چرا مزمور 23 محبوب ترین باب در کتاب مقدس برای من هست آیا میتونید مثل نویس بگید که خداوند شبان من است ما اینه که اون رو به عنوان شبان نیکو بپذیرید و از او پیروی کنید و از مرتعهای سبز، آبهای آرام و از تازگی که او برای شما داره لذت ببرید تا برنامه بعدی امیدوارم برکات او رو به فراوانی در زندگیتون تجربه کنید